اعوذ بالله السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و العالمین السلام و سلام على نبینا وآله آله التاهرين. خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم و صبح خیر عرض میکنیم شاء انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه گزندی به دور جلسه قبل دوشنبه پیش متأسفانه من هر کار کردم سایت و سامانه به من اجازه ورود نداد و نشد نزدیک به یک ساعت هم معطل شدیم ولی نشد که در خدمت شما باشیم انشالله که جبرانی اون رو خواهیم گذاشت و این درس و هم شما از دست نخواهید توصیه میکنم به شما برای خاطر اینکه خیلی جمع و جور نشه مطالب ما در انتهای ترم چون ممکن است باز حالا انشاءالله که چنین نشه اتفاق بیفته من پیشنهاد میکنم که این چهار شنبه، یعنی چهار شنبه آینده فردا نفس فردو. ساعت سه بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، جبرانی اون رو انشالله برای شما در خدمتتون باش. و بتونیم مبحثمون رو به شکلی که میخواهیم انجام بدیم خب پس انشاءالله چهارشنبه ساعت سه در خدمت شما هستیم اما بریم سر درسمون ما در رابطه با بحث عروض مقدماتشو داشتیم بحث میکردیم معروز رو تعریف کردیم فایده اون رو بیان کردیم و کیفیت وزن شعر رو هم گفتیم گفتیم این وزن شعر یک سری هایی دارد اصلی است و تفعیله‌هایی هم که فرعی است و از روی اون ساخته میشه خب اگر ساعت سه بعد از ظهر سه چهارشنبه کلاس دارید ساعت ده صبح چی؟ ده صبح چهارشنبه؟ آیا ده صبح چهارشنبه هم کلاس دارید؟ خوب اگر ساعت ده صبح چهارشنبه کلاس ندارید ساعت ده صبح میگذارید اگر سه براتون مقدوره اگر سه برای شما مقدور نیست کلاس دارید خب سه نباش. اگر سه کلاس دارید ساعت ده پس ساعت ده شد یا ساعت سه ده الله تعالی انشاءالله. پس ساعت ده انشاالله در خدمت شما هست. نگاه کنید توی مباحثی که داشتیم. ما وزن‌های های اصلی و فرعی رو برای شما توضیح دادیم. بعد می‌فرماید که وهازیه تفعیلات به نوع ها به این ها در دو نوعش در واقع مطلب عبارتن از موازین جزئیته. عبارتند از یک میزان ها و معیارهای های جزئی توزن و به ها الکلمات که باهاش وزن میشه کلمات من سل مدد زمانیه یا تلتی یا اطلاف در واقع این تفعیله ها میان بخش ها اون مدت های و اون مدت و اون فاصله زمانی که هر کدوم از این کلمات در شعر ایجاد میکنن و میگیرند رو برای ما بیان میکنن یعنی در واقع اون بخش هایی که توی دوره ابتدایی یاد میدن آب با، با نان اینطور بخش بخش انجام میدن این رو به ما یاد میده. مثلا شما فرض کنید که میگید قه فا نب که این قه فا نب خب مثلا قه فا نب خب این قه فا نب فعولن مثلا این بخش هایی که هر کدوم از کلمات میتوانند به هنگام تلفظ از ما بگیرند این تفعیله اون رو به ما نشون میدن حالا نگاه کنید محید ما نورید و ان نزن البیت شعری حالا اگر ما خواستیم یه بیت شعر رو وزن کنیم چه کارهایی باید بکنیم این خیلی داریم شروع میکنیم مقدمات و هین اما نورید ان نزن البیت الشعریه علینا ان نعلمه وقتی ما مخواهیم یه بیت شعری رو ورزی کنیم بر ما لازم است ان نعلم ان بعض عبیات تتالف و من تفعیلات متشابهد این که یاد بگیریم بعضی از عبیات تشکیل شده از تفعیله های متشابه یعنی یه موقع وزنمون مثلا وزن رجزه تام میایم فرض کنیم که می کنیم در میاد مصطف علون مصطف علون مصطف علون هر ستا مشابه در من. این مصره دوباره مصره بعد مصطف علون مصطف, علون، مصطف علون. ایننا نعلم ان بعض لبیات تا تعلف من تعیلات متشابهت و بعضها های تعلف من نوعین مختلفین بعضیش از دوناه مختلف دو نوع مختلف مثلا فعولان مفاعیل، فعولان مفاعیللات دو نوع مختلف در میاد درست شو؟ من سلاس تنوائن یا از سه نوع مختلف در میاد یعنی ما سه نوع مختلف رو به عنوان مثلا فرص کن فعولون مفایلون مثلا اینطوری در پس من این اگر ما بیاییم بخواهیم یک بیت شعری رو تقطی کنیم گاهی اوقات اون تفعیله مشابهند مثلا اومده مصطفیل و مصطفیل و مصطفیل گای دوتا دوتا مشابه هند دنهای مختلف هند فعولون مفایلون گای اوقات چه تا؟ اومن تنوان حسب ترتیب خاص اونم به حسب ترتیب خاص ها. مثلا فعولون مفایلون وزن داریم اما مفایلون فعولون اصلا این موسیقی رو نداره این بر اساس خودش شونزده تا بحر شعری رو زائقش پذیرفته و آفریده خب پس بنابراین پس بنابراین یه ای دارد این زائقه باعث شده که یک موسیقی رو بپذیره ما اینطور نیستش که شما فکر کنید که اگر مثلا فعولون مفایلون فعولون مفایلون وزنی که از پذیرفته حسد من مفایلون فعولون هم هست نه نیست به حسب خواست حسب همه ترتیبین خواست کما سمر آزالکه هینه ندرست و علعب و شعریت الله داله انگامی که ما این رو با هم بحث کنیم شما اینه میبینید که باید هم این اوزان حفظ بشه باید این اوزان حفظ بشه مثلا شما یه دوتا ورق بزنید ببینید میرسید به بحور شعر می‌دانید سه تا عرفی زدید رسیدید به اول بس بحورشه بحر اولی که میگه بحر طویل اسمش بحر طویل میرسید که میگه این بحر طویل از 8 تا تفعیل تشکیل شده نگاه کنید فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیل فاعولن اول مفاعیلن دوم اما دیگه ما بحر دیگه ندونیم که مفاعیلن فاعولن بشه به حسب زائقشون این موسیقی فعول و رو پذیرفتند به حسب زائقشون این رو پذیرفتند خب حالا بیاییم و ولکه نظهر حاضر تفعیلات حالا برای خاطر اینکه ما بتونیم این تفعیله رو براتون ظاهر کنیم یعنی بتونید این ها رو ببینید بشنوید با گوشتون عادت کنید و لکه نوزه رهاز تفعیلات لابده ان و البیت شعریه کتاب عروضیتون ما برای خاطر ببینید اولا ما یه مرحله شعرمون رو به شکل امراه املاع معمولی می نویسید. رو به شکل املاع معمولی می نمیسیم مثل امینی که الان تو کتاب خواهست قفا نبک من ذکرا حبیبن و منزلی به سخت لوا بیند دخول فهمدی رو به شکل انشایی می نمیسی. اما موقعی که می خواهیم تقطی کنیم اینو باید به شکل عروضی بنویسیم املاع عروضی فقط مال خود عروضی هاست دیگه این رو شوانم توی, توی انشاء بنویسید توی نامه‌نگاریتون بنویسید این املا کمک میکنه که شما بتونید تحقیق کنید حالا ولی که این بله که این نزهره حاذه التفیلاته لابد عنک تو به البيت شعریه کتابتن اروزیه ما میگیم کتابت پس مرحله اول چی شد مرحله اول اونی که مثلا من تو سوال میدم به شما بیت رو من به شکل املا روزانه برای شما نوشتم همینطوری قفانت که منذک را حبیب و منزلی به صفت لوا و این از و فه نوشتم میگم اینو تختی کنید اولین کاری که شما میکنید باید اینو بتونید زیرش به شکل املاع عروضی بنویسید انکت و البیت شعریه کتابتن و وحیت حقوم و این به خودمون انشای این املاع عروضی بر دو پایه اساس داره و هیه تقوم و امرین حامینه و دو تا مطلب مهم پاییزی شد یجب ان نزعهما همان نصف عیونه همان دو تا پایی و اساس داره که باید بذاریم جلو چشم یعنی فراموشش نکن یک هما انکتو به الهروف اللتی تنتقو و ملو، التي لا تنتقو پایه اولش اینه و ما این دوتا یکیش اینه شینه و عل حروف که نطق بهش میشه تلفظ بهش میشه اینها رو ما می نویسیم و نه و رها میکنیم یعنی عل حروف لا تنطق حروفی که نوشته نمیشه اونها رو میذاریم کن. مثلا فرض بفرمایی که فرض کنید فرض کنید. این جمله توی شعر بود درست شد این جمله توی شعر بود فلقوم فلقومو فلقومو ف یا و ولقومو ذره بود الرجله الان شما اینو کتابت املایی می نمیسید ولقوبا فلقوبا زربو الرجله یعنی چی؟ یعنی پس بنابراین ف... پس بنابراین، اون مردم اون جماعت زدند این آقا رو یعنی این آقا بهشون توهین کرد پس هم داشتیم یه شعر می این آقا بهشون توهین کرد اون مردمان هم پس او رو کتش شد اما موقعی که اینو میخونیم اینطور نمیخونیم که فلق و زربو الرجل چجوری میخونیمش میخونیم فلق و زربور رجل زربور رجل. حالا موقعی که ما میخوایم این کتابت اروزی کنیم میدونی چجوری منویسیم می دیگه فلقوم الفلامش نوشته نمیشه منویسیم فلقوم فه میچسبه به لام ساکن فل قوم دار شد اینجا چینجا شد الف القوم حصف شد ار رجلله شد ز جله ز و چی هست میشه ز ووا ذرب او هست میشه الفلام از رجل هم هست میشه زرابور رجله اینجور نوشته میشه فقط یه تشدید میاد زربور رجله. حالا میگیم که قانون تشدیدم اینه که اینجا ما تشدید نداریم باید جدا بنویسیم یعنی که روی بنویسیم تشدید بس میرسیم فل فیلام قومو ز ل بر ز ل بر یعنی زر بر منیسیم زر بر برج وجوده. حالا دیگه چجوری نوشته شده؟ زر بر رجول نوشیم زر بر فجد بخوندیم زر بر رجول این الان این میشه شو... الان این نمیتونیم بخش کنیم فل قا مو ز ل بر و جولت اون مقدار فاصله های زمانی که اقتضا میکنن و ما راحت میتونیم تو این ببینیم پس قاعده اولش اینه اللکتو به الحروف اللتی تنتقو و نهملت اللکتو به الحروف اللتی تنتقو و نهملت داشت شد؟ اللتی لا تنتق و کنار بگذاریم اونی که دیده خونده نمیشه تلفز نمیشه فهی ازن تختلف و انل کتابت پس بنابراین اینجا املا از املاه کتابت عادی فرق میکنه. یعنی جور دیگه نمیشه فهی بقی ازن هین اما نورید و و بل عروضیتن پس شایسته است در این هنگام موقعی که ما میخوایم بنویسیم کتابت عروزی ان نحذف بعض الحروف اینکه بعضی از حروف رو حذف کنیم فی بعض المواص بعض جوها حذف کنیم دیگه تو کردیم دیگه تو همین فلق و ما ضربر رجل حذف و ان لذید البعض الاخر البته یه جایی هم مجبور بعضی از حروف رو اضافه کنیم مثلا اگر شما داشتید هازا هازا رو چجوری می نویسید؟ ولی موقعی که تلفظ می کنید میگه چی؟ هازا هازا تلفظ می کنید میگید دیگه خب موقعی که می نویسید چجوری می نویسید؟ ها رو باید با علف بنویسید درست شد؟ و ان نزيد البعض الاخر في مواضع اخرى در جاهای دیگه و عینایک تفصیل از الان نحره تالی الیک اسم فئله یعنی بگو تفصيل این مطلب رو به شکلی که میاد خب پس بنابراین ما کتابت عروضی یه ذره یاد گرفتیم که هر چی رو که تلفظ میکنیم می نمیسیم. هر هرچی رو که تلفظ نمیشه میذاریم کنار ها بر اساس آنچه که تلفظ می کنیم به و تلفظ می شود نوشته می شود درست شد. این دوتا اصل اصل مهمه هرچه تلفظ شود نوشته می شود و هرچه که تلفظ نمی شود کنار گذاشته می شود این مدتر داشت حالا از اینجا به بعد یه قاعدهی رو بیان میکنه که زیباس یعنی جوریه که شما خیلشتم الان خودتون میتونید داشته باشید ما گفتیم که دوتا اصل مهم داره دیگه یکی که هرچی تلفظ میشه مینویسیم یکی هم هرچی تلفظ نمیشه میذاریمش کنار نظام میگه الحروف التی توزاد جاهایی که یه چیزی اضافه میشه بعد دوم میگه الحروف التی یجب ان حروفی که واجب هست بشه این دوتا مبحث رو به طور نمونه داره بهتون نشون میده درست؟ الحروف و لتی حروفی که اضافه میشه یک علف به جیم دال ها حب جد حب داره یک ایک تو میشمونه الحروف التي تزاد الف تنوين رفع گوش کنید تنوین رفع و نصب و, و جر تنوین که نوشته نمیشه مثلا جا الرجلون شما می نویسید جا و اون تنوین به شکل علامت باشه اگر گذاشته بشه علامت باشه لغوی اما نوشته نمیشه ولی توی اینجا شما تنوین رو می نویسید به شکل نون رجلون چجور می نویسید رجلون رو؟ را جیم لام نون رجل اینطوری می نویسید را جیم لام نون رجلون درست شد؟ تنوین رفع و نصب و جر یکتب و نونن اعتیادیتن نونن اعتیادی یعنی نون عادی نون معمولی به شکل نونه معمولی نوشته میشه چون تنویی تلفظ به نون میشه نه قلمون مثلا اگه بود هازا قلمون هازا شد چجوری می نمشتی؟ ها علف نوشته نمشد زا بعد می نمشتی قلمون قلمون دفترن کتاب مرفوع منصوب مجرور قلمون ببین چطور نوشته شده دفترن کتابن کتاب بن فرق کتابون کتابن کتابن تنوین چه منصوب چه مجرور چه مرفوع به شکل نون نون عادی نون معمولی نوشته میشه خب این اول خب دو اینو من گفتم یفک فک و ادغام و لحرف المشدده اگر یه جا حرف مشدده داریم اون به شکل فک ادغام نوشته میشه اینجا اینجا ما تشدید نداریم فکر یکتب و حرف این دو حرف نوشته میشه اول و هما ساکن و ثانی متحرک به شکل دوتا حرف می نوشیم اولی ساکن دومی متحرک نه و نگاه کنیم مد ده. حالا این تشدیدش آخره مده معلمان این تشدیدش وسطه معلمان خب الان شما نگاه کنید مده رو چجور نمشتیم مده نمشتیم. معلمان رو چجور نوشتیم؟ نام رو از هم جدا کردیم معلم تنوینش هم ببینید نونه عادی معلمون. پس اگر یه موقعی اصلا توی مثلا شعر بود مد معلمون یده دراز کرد معلم دستش مده معلمون یده خب این چجوری جوری نوشته میشه مد معلمون یده مدش به شکل همین مد نوشته میشه معلمونش به شکل این معلمون یده اون چه دراز درست جیم، الالف اللي ولا تكتب و املاء که نطق میشه ولی تو املای عادی املا عادی نوشته نمیشه اینجا تكتب و الف اینجا علف نوشته میشه ما بر اساس نطق کار میکنیم تكتب و الف الله الله دیگه اینجور الا اینطوری که نوشته شده الله جل جلاله این کتابت املایی عادی اما اگه شما بخواید الله رو توی کتابت عروزی بنویسید چجوری جوری الله. ال لا مو نوشته میشه رحمان دیدید دیگه رحمان اینطوری می نویسن تو عربی تو بسم الله الرحمن الرحیم تو. ولی رحمان توی کتابت املایی اینطوریه تو کتابت عروزی الف بعد از میم رحمان نوشته میشه حازا همینطور نباکنی به الله چطور نوشته الله این کاری رحمان این شکل منیمسیم می حازا میشه الفی که نطق میشه ولی کتابت املایی نمیشه در هنگام کتابت عروضی الف نوشته میشه. دان زمیرالها المتحرک زمیره های متحرک زمیره های متحرک ازا کان ما قبلهو متحرکن زمانی که ما قبلش متحرک باشه توش و حرکتهو الى حرفن به نوعه ها اشباع میشه به حرفی از نوع خودش برای شو. مثلا نگاه کنید نه و لح خب اگه وقف کنیم بگیم لح به مرر تو به درست شد تو به قلت و لح وقف لح. اما اگر ما وقف نکنیم و ادامه بدیم این به خونده میشه چی بهی له خونده میشه چی لهو لهو مالن لهو مالن بهی داون لهو مالن او مال دارد بهی داون او بیمار است موقعی که وقف نمیکنیم میبینیم لهو بهی میخونیم لهو بهی چون حرکه از جنس کسره یا حرکه از جنس زمه واوه لهو لهو بوده لهو خونده میشه بهه بوده بهی خونده میشه درس شد؟ زمیره ها ظمیرها ها اگر قبلش کسره بیاد یا قبلش یا ساکن بیاد الیه ها شد قبلش کسره بیاد یا یا ساکن بیاد ها به جای اینکه تلفظ هو بشه رایتو هو ضربتو توهو لهو خونده میشه بهی الهه انا لله و انا الهه راجعون خب الان بهی لهو اینطور نوشته میشه و ما اینطوری می کنیم چرففوز که ولی نگاه کن اگه ما گفتیم لهو مالان دیگه لهو نمی نویسیم اینطوری بنویسیم لهو بنویسیم لهو مالان اینطور میخونیم بهی دعوان ولی توی کتابت عروزی لهو بهی این دوتا و کذا میم الجمع المتحرکتو میم زمیر جمع متحرک دونست شد مثلا شما آخر مصرارتون دارید لعای توهم خب اگر وحف کنید عادی میگی رعای تو ولی اگر حرکه دادید میگیر رعای تو مو رعای تو رعای تو خب اگر اشباه کنیم اون واف خونده میشه ولی نوشته نمیشه ولی تو املاع عروضی می نویسیم و کذا می مل جمعه المتحرکتون نهو همو مثلا آخر بیت اومده و ان همو و ان هم بوده اشباع کرده و ان همو ما این هم می که تو املای عادی ولی تو املای عروضی مینویسیم و ان همو کم همو خونده میشه کم، ولی اشباعو یحصل و به شرط اللا یلیه ما ساکنه اشباق حاصل میشه به شرط اینکه بعدشون ساکن واقع نشه شد. یعنی بعد از این زماعه ساکن واقع نشه اگر ساکن واقع شد ولی اشباق و یحصل و به شرط اللا یعنی همه ساکنون الان مثلا شما تو شعر تو شعر فارث و شن داشتید همول اهل لا مستود اسره زائل خب همول اهل همول اهل اینا اهل منن نامستود اسره زائل لدگی این همول اهل دیگه میبینید چون بعدش ساکن اومده دیگه اشبا نشد همول اهل، همول اهل، دیگه نشود. شرط این اینه ولی اشبا در اینجا یحصل سلو به شرط ان لا یلیه ما این هم و کم لا یلیه ما ساکن خب تموم شد. شو همینطور اون قبلی ها این زماعر شرطش اینه که بعدشون ساکن نباشه لهو مالن لهو مالن بهی داءن حالا اگر به جای مالن المال بود چی میخوندیم له المال لحول مال دیگه اشفاق نمیشون پس شرط اینه که در اینجا زمیره های متحرک و میمه جمع متحرک شرطش اینه که بعدشون ساکن واقع نشون اینه نه نه قد تو میبینیم و تکرار میکنیم اینجا شما یه مزدار تمرین میکن اونجا ماهی وقتی تفتی کنیم میبینید چیز سختی میخواد فرنجا آموزش این مطلب رو داشت بعد حرکت و حرف روی حرکه حرف روی الان شما نگاه کن حرف روی اون حرف قافیه است که میگن مثلا این قصیده لامیه است اون لام الان نگاه کنین قفا که من ذکرا حبیب و منزلی منزلن بوده به سخت لوا بیند دخول و ملی هومله بوده اسم جایی دیگه منزل الان ما منزلن رو اشتباه کردیم چی خوندیم؟ منزلی حالا توی کتابت هم چجور می نمیسیم؟ منزلی اون لی می آخر هومله اشباه کردیم موقع نوشتم می سیم هومل کسرم اگه بذاریم املاع عادی کسرم بذاریم ولی هومله چجور می فاو فا ملی موقعی که کتابت عروزی کنی می‌نویسیم ها و ملی لی, لی. حرکت و حرف روی توش با و حرف من جنس ها حرفی از جنسش الان لام کسره بود به یا درست شد حالا اگر مثلا فرض کنید که زمه بود به واف درست شد فتحه بود بعده حرکت تو حرف لوی تو شفاه اله حرف منجس و ظممتو تو توش با ولن واو ذمهش به واو میشه کس یا. کس و کسره تو الیا کسره به یا و کذا توش باو حرکتو اخر حرف من صدر ال بیت حالا درسته که حرف روی توی آخر یعنی اون قافیه توی آخر بیت هستش ولی بعضی از ابیات تو مصرع اولشون هم قافیه دارند همین مثل فانب که من ذکرها حبیبن و منزلی به بسفط اللواب بین الدخول فحاملی اینجا هر دو مصرع حرف روی داره اگر که اصطلاح هم میگن میگم بیت مسرع میرسیم اینا رو همه ی ارسامیشون اینجا اون مصرع اول هم اگر حرف قافیه داشت اونم همش میگه الان نگاه کنید مثلا مال امرال غی سر معلقه شد قفا نب من ذکر حبیبن و منزلی داره به سخت لوا بین الدخول و حوملی داره. اما به سر دوم دوم دیگه نداره فتوز حف لم یعف و تو زهحففل المقرات لم یه افرست لما نسجتها من جنوبن و شم علی داره. در شو؟ معمولا بیت اول قصیده رو برای خاطر اینکه بگن که قافیه ما چیست حرف روی ما چیست هر دو مسرع رو دارای قافیه میکنن که بهش میگن بیت مسرع یعنی بیت تزیین شده که زو این شده دوتا حرف روی داره. میگه و همچنین توش با حرکت و آخر حرف درست شد من الو بیت نحو حرکت ال فی تزهبو نحو حرکت ال و تلعبو فی حاضر بیت الان این بیت بیت مسرعه هم مصره اولش قافیه داره حرف روی داره هم مصره دومش لذا هر دو جا هم با زمه داره اشباع میشه و واو میاد الان اینطوری ما میخونیم نگاه کنیم انلहू و ایامنا تذهبو نمیگیم یا تذهب وقف کنیم نمیگیم میشه این اینطوری میخونیم انلहू و ایامنا تزحبو و نلعبو بل الموت لا يلعبو نمیگیم بل الموت لا انالهو و ایامنا تزحبو و نلعبو ول لا لایلعبو الان بیت دومش مثلا بعد از این بیاد دیگه قافیه فقط اون مثل دومه دیگه تو مثل اولی معمولا بیت اول رو بیت مسرم میارن نه که ممکنه بیت پنجمم بیاد حالا اگر باشه جزء زیبایی تو خود معلقه امرؤ شما نگاه کنید چند تا بیت وسط شم هست الا ایها الليل الطویل الا به صبحن و مل اسواهم که به ازلی هست ولی بیت اول رو انتخاب میکنن تا قافیه شونو به خواننده تحمیل کنند بشناسونن بد های بد دیگه اگر آمد آمد نیامد معمولا هم نیست انداله آیا ما بازیگوشی کنیم لحب و لعب کنیم این واقع و حالی است و حالا که روزگاران ما تذهب و عمرمون داره میره روزها داره از پس هم میسره آیا ما بازیگوشی کنیم آیا ما چرخیم و را به بطالت بگذرونیم در صورتی که روزگار داره به سرعت میگذره و نلعبو اطفا به جای نلحوز یعنی انلعبو آیا بازی کنیم؟ و ول لا یلعبو در حالی که مرگ با ما بازی نداره شوخی نیست میاد ازرایل هست و مرگ میاد آیا ما مشغول به بازی کردن بشیم میگه یجبا ان تشب بعد و توکتبه طرز حبو یعنی الان اینجوری نوشته شده اون زیر که حبو نوشته اون املاه عروضیه و نلعب ول موتلا لا یلعبو عبو ابو اینطور نوشته شده تمام خب حروفی که اضافه میشد رو ما دیدیم تو پنجا با هم دیگه بحث کردیم و دید. حالا الحروف و لتی با ان توزف حروفی که واجب حذف بشه بعضی از حروف هم هست واجب حذف بشه بعضی از حروف واجب است که فس بشه حالا اون حروف کدومه اینجا ما با هم خواهیم ان حروف یجب یجبا ان توزف. الالف یک الالف الهروف و لتی ان الالف اللتی لا تنتقه الفی که نطخ نمیشه ولیکن نها تو و املاه ولی توی نوشتار عادی که ما می نویسیم املاع عادی نوشته میشه این لا تو کتاب و کتابت هم نطخ اینجور نمیشه تو کتابت عروزی هم نوشته نمیشه میگیم مثل چی؟ میگه نهوالالف الفارغت فی قالو مثل الف فارغه در قالو این قالو این الف رو بعد از واو زمیر میذارن قالو یعنی گفتند بعد از واو زمیر میذارن تا نشون بدن این واو, واو زمیره فرق بذارن تا واوی که مثلا از اشباع به دست اومده یا واو خود کلمه است این واوی که بخواد نشونش بدن که واو زمیره قالا قالا قالو این واو زمیر برای فرق این الف رو میذارند شمیگن الف فارقه خونه قالو الف نوشته نمیشه الان شما قالو رو بخواید بنویسید تو املای عروزی قامی نویسید یه لوب. قالو و همزات الوسط ما دو نو همزه داریم دیگه یه همزه قطع داریم که حتی اگه متحرکم بیاد خونده میشه درست شد نه و, انزلن و انزلنا الهدید و انزلنا الهدید و انزلنا الهدید و بعضن شدید باب افعال همزش همزه شمزه قطعه کلمه مثل اصد همزه شمزه قطعه مال خودشه شد میگیم و اخذ و اسدون نه همزه قطعه که خوندی. یه همزه داریم همزه وصله که برای اینکه که ابتدایی به سکون نشاملش مثل اذرب. حالا ازرب بزن اذرب و اصاکه الحجر بزن با اسد بینسنگ حالا ازرب وگه واف قبلش بیاد چی نوشته میشه؟ وزرب موقعی که نوشته میشه چجور نوشته میشه؟ می نوستیم وافزاد وزرب وزر می وزر وزرب اینطوری نوشته میشه می خونیم وزرب حرکه می زدیم طول وزرب. الان نگاه کنید این الان به شکل چی نوشته شده؟ به شکل املاع عادی انبنک مثلا میگم سأل تو ان ابنک یعنی پرسیدم از فرزند تو پسر تو از پسر تو سؤال کردم ان ابنک یا فنزر یا وستخرجه وستخرجه درست شد الان ان ابنک همزه ابن همزه وصله ابن ابن. همزه انظر همزه وصله مضموم هم چون جون فال اینالفعلش زن بداشته انزال شد وستخرجه همزه همزه وصله اگر ان نبود میخوندیم ابنو که اگر فا نبود میخوندیم انظر. اگر واب نبود میخوندیم استخرجه امظه هم نوشته مشو چون تلفظ میشه ولی وقتی قبلش اینها آمده دیگه اون امظه حذف میشه دیگه تلفظ نمیشه ما هم نمی نوشه. الان نگاه کنید فان هاذه کلمات توک تبن الان ببین چه جوری نوشته شده انب نک الان اگر اینجوری اینو بذاری جلوی یه نفر نمیتونه بخونه بفهمه یعنی از پسره. انب نک بن زر ببین چه جوری شده رج خود رج خب اینو یاد گرفتیم چیزی سختی هم نبود با تو حذف لام من ال حس میشه لام از الف لام اذا دخلت علا حرف شمسی من الكلمه تو میدون بعضی از حروف قمری است بعضی شمسی مثل القمر از شمس القمر شما الفلام خونده میشه از شمس لام خونده نمیشه حرف بعدش مشدد میشه درست و شمس و زوهاها و القمر ازا تلاها دوران و شمسه و والشمس و شمز و زهاها و الغمر ازار طلاحا میگه تهزفا اللامو منال ازار دخلت علا حرف شمسی منال کریمت نحوه اشر او اشر او الان اگر بخوایم اشر او از زحاکو از زحاکو نبا کنید چجوری نوشته میشه؟ اش شر او اولا گفتیم ادغام رو باید بازش کنیم باز کردیم لام رو حذف کنیم حذف کردیم الان نبا کنید از زحاکو این دو تا تشدید داشت هر دو باز شدن زاد زاد ها ها لام هم حذف شد الان از زحاک ببینید چجوری نوشته شده تو کتابت عروضی ما اینطوری می‌نویسی جیم، تاء ظا یاء المنقوص و الف المقصور غیر ل منوننین اندما یلیه ما ساکنون کلمه منقوص کلمه‌ای که آخرش حرف عله داره اسمیس که آخرش حرف عله داره مثل قاضی دو چور مثل الفتا موسا الفتا یعنی این آقا این جوان الغازی یعنی این آقای قضاوت کننده خب الان الفتا منقوصه آخرش الف داره القاضی منقوسه آخرش یا داره میگا کون تهضف یاء منقوس قاضی المقصور مقصور اونییه که آخرش الف داره دیگه مثل الفتا پس مقصور به چی میگیم به اونی که آخرش الف داره مثل الفتا و موسا منقوس به چی میگیم اونی که آخرش یاد داره مثل القاضی لو و نشر معکوس اول اول گفته تو ظفای اول مثال زده به قاضی الف مثال زده به الفتا اول الف مخسور رو گفته مثال تو مثالش بعد یای قاضی رو اینها اگر تنوین نداشته باشن کی اینها تنوین ندارند موقعی که الف داشته داشت دور که میاد تنوین ندارن. اگه نداشته باشن میگیم قازن فتن رعی فتن اولای الهدن من ربهم بهیم اولای ولی وقتی الافلام داشته باشه درست شد الهودا. مشخص شد پس که ما اینها تو و یا علمانقوس و علف و المقصور مقصور غیر المنونین به شرط اینکه که تنوین نداشته باشند. گفتیم که این تنوین ندارن موقع که علف لام دارن اندما یلیه ما ساکنون شرط بردشم اینه که بعد اونها ساکن واقع الان نگاه کنه الفتا اگر شما مثلا فرض بفرمایید اینطوری بود الفتا رعی توه عادی بود یعنی اصلا هیچ نمیافتاد. الفتا رعی الفتا جا اون آقا اومد الغازی رعی توه الغازی جا میبینید بعد از الفتا الغازی متحرک اومده رعیتون جاعه اما اگه بعدش ساکن بیاد نگاه کنید الفتا نبیل نبیل یعنی شریف الفتا نبیلو یعنی این جوان شریف خب چجوری میخونیم الفتا نبیل؟ الفتا نبیلو الفتا نبیلو الفتن نبیلو القازی العادلو چجوری میخونیم؟ القازل عادلو القازل عادلو حالا موقعی که نوشته میشه اینجوری نوشته تو کتبانه نگاه کنی چجوری نوشته شد الفتن نبیل الف فتا حذف شد لام النبیل حصف شد و نون مشددش دوتا شد درست شد الفتن نبیل الف الفتا حذف شد لام النبیل حذف شد چون شمسیه دیگه و نون النبیل که مشدد بود دوتا شد شد الفتن نبیل القازل عادلو، القازی یاش حصف شد ال عادلم الفش حذف شد علف العادل چلا چون همزه وصله نه خودیم فصل. الغازل عادل این مبحث و کذا الیا و ولوا و و منن فعل ناقص فعل ناقص اونیه که لامون فعل شرفعل است حالا ممکنه واغ باشه ممکنه علف باشه ممکنه یا باشه یا و و الف از فعل ناقص هست میشه الان نگاه کن یدعو او واوه. دعوت میکنه یخشا بی دارد میترسد یرمی میاندازد خب الان نگاه کن اگه گفتیم یدعو او زیدون خب یدعو او وابش نمیش نمیشه او زعی دوم درست شد؟ اینجا چیزی حذف نشد ولی بعدش که ساکن اومد میگیم ید او صدیغو ید او صدیغو ید او صدیغو اون واو ید او به التغاز ساکنه این حصفش از صدیقم لامش هست میشه علفش هست میشه ید او صدیغون شمسیه دیگه ساد هم مشدد میشه ولی اگه علف لام نداشتیم میخوندیم ید او صدیغون عادی بود ید او صدیغون یخشر یخشربه الان یخشا الفش حرس میشه یخشرب الف الفلامش هست میشه چون حرف شمسیه را هم مشدد میشه یخشرب یرمیل هجره می اندازد اون سنگ رو یرمی الهجره میخونیم یرمل حجر. حجره یرمل حجره یرمل حجره میبینید یرمی یاش افتاد الحجر چون حروف قمری بود همزهی الحجر افتاد حالا چجوری نوشته میشه؟ تو کتابونی با کنید ید از زدی قب چجوری نوشته شد؟ یخشرب هم را تشدید داشت هم با تشدید داشت از هم جدا شد الفلام حرف شمسی حذف شد یخشا هم شد. همونی که تلفظ شد یرمل هجر این الان اینجوری اگه کسی بنویسه کتابت عروزی، این کتابت فقط مال عروضیینه یعنی. این رسم الخط خود و اونا بعد اینکه بتونن شعر رو تقطی کنن و ایلا تو نام نگاری، تو انشاء عادی این غلط است و همچین چیزی نیست فقط برای خاطر اینکه شما بتونید شعر رو تقطی کنید دال خوزف و الیا و ولعلف و ولواو من اواخر کلمات یا واو علف از آخر کلمات هستش. میشون مثلا مثل چی؟ نهو ازا فی الا الا لدا اینطوریم این کلمات آخرشون علف دارن واف دارن یا دارن ازا علف فی الا، علا. این دما یلی ها ساکنن اگه بعدشون ساکن بیاد. مثلا اگر بود اذا اکتسبه اضا اکتسبه شما چجوری میخوندید اضا اکتسب میخوندید ازک تسب ازک تسبه ازا الفش می هست میشه اکتصبه هم همزه وصلش ازک تسبه زمانی که کسب مثلا فی ادار زیدون فی ادار زید تو این خونه چی میخونید زیدون فی ادار؟ میخونید زیدون فدار فد فی یاش هست میشه ادار الفلامش هست میشه و دال مشدد چون حرف شمسی نگاه کنید راحته اندما یلی ها واقع بشه بعدش حرف ساکن نه و ازن تسبه زمانی که نسبت دهد. ازن تسبه فت داره این الان تصورن الان بر پیروزی الان نگاه کنید چجوری چی خونه تو کیتا بو ازن تسبه شد شد این تسبه هم وصل یای فی حذف شد ال دار هم الفلام شمسیش حذف شد و دار دانش مشدد بود جدا شد سسیالس سبیله الا علفش حذف شد از سبیل الفلامش حذف شد چون حرف شمسیه سبیل هم سینش مشدد بود جدا شد فجت خون شد علن الا الفش هست شد انتصار همزش هست شد چون همزه وصله علن البته اینجا خودش یه غلط نمیشد چون علن تسارن تنوین داره بعد تنوینش هم به شکل نون بنویسه کجا شدید یعنی بعد از را یه نون الان تسارن اون تنویل داره دیگه و کذا الاسماه خمسه اسماه خمسه عبا اخو زو و اینها اسماه خمسه رفعن و نسبن و جرن در حالت رفعی و نسبی و ها اگه بعدشون ساکن بیاد واو و الف و یا حذف میشه الان رواکن الان چه جری ها و الف و یا میش دیگیم جا عبل فضله رعی تو, عبل فضل تو به عبل میشون با زو مثال زده زلفل زلفزله، زلفزله تمام شد ها وا و و یا و مخاطبته و الف و زمیر اسنین اول اسنتین خب واقع زمیر یا زمیر مخاطبه یا زمیر مخاطبه مثل ازربی واوش مثل ازربو خب الف حالا دیگه فرق نمیکنه ازربا برا مذکر محننس میاد. و الف و زمیر الاسنین اول اسنتین. تو زفوهی نه یلی ها ساکنون. موقعی که بعدش ساکن بیاد هست میشه. نهو نگاه کن. دخلو البیت حالا اگر ادخلو هم بود مگذیم ادخلو البیته. فرقی نمی کرد این واو هم برای ماضی میاد هم برای عمر میاد. لم تدخلی اداره حالا اگه بود ادخلی باز فرقی نمی کرد. هم با مزارع میاد هم با امر میاد ادخلی اداره عرفا انتقال لهم عرفا انتقال لهم دو حالا اگه اعرفا بود باز فرقی نمیکرد علف علف زمیر واقع زمیر یا زمیر اگر بعد از اونها ساکن بیاد هست میشه الان دخلل بیت دخلل بیت چی هست میشه از دخلل بیت دخلو هست میشه اون علف فارقه که خوندیم بعد از دخلو میاد اون بالا خوندیم اون هست میشه البیت الفش هست میشه ولی لامش هست نمیشه چرا؟ به دلیل که حرف است دخلل بیت لام خونده میشه باید دخلل بیت لم تدخلت داره لم تدخلت داره اینجا چی هست میشه؟ لم تدخلت داره یای لمتد خلی هست میشه، ایایی که فایله لمتد خلی هست میشه. لمتد خلیت داره. علفلام دار هست میشه هم به فک میاد. عرفا انتقال هم میخونیم عرفن هم عرفن هم. علف عرفا, عرفا هست میشه، همزه انتقال هم هم هست میشه چون همزی وصله توجه اینطور طور نوشته میشه دخلل بیت لم تدخلت داره عرفان تقال لهم عرفان تقال لهم تقریبا ما آرام هم براتون خوندم یواش یواش تمرین کردیم دیگه راحت میتونید بفهمید چه چیزی رو مینویسیم چه چیزی رو حس میکنیم اساس و پایش برای اینه که هرچی که شعر رو اولا باید یاد بگیریم، خوب بخونیم. بعد که خوب خوندیم بر اساس تلفظمون اون رو می‌نویسیم. درست شد؟ حالا مطالبی داشت که چه چی چیزهایی اضافه میشه چه چی چیزهایی حذف می‌شود تو این دو جد حالا نگاه کنید میگه پایین یه هاشیه ای داره. میگه یه تحتی همزت فی وصلفی بدایت مازل افعال مزیدت مازی افعال مزید مثل استخرجه اکتصفه, و انصرفه و امرها، ها امره این ها اکتصفه, و مسترها ها مثل اکتصاف انتصار الا باب افعال الا باب افعال، الا باب افعال. مگر در باب افعال تو همزه هم شمزی پس یکی از جایی که همزه وصل داریم ماضی افعال مزید آه. درست شد و عمر اونها و مستر اونها جز باب افعال دو فی بدایت عمر افعال سلاسیت مجرد افعال سلاسی مجرد در ابتدای اونها درست شد البته به شرط اینکه ساکن باشه ابتدا باشه والله اگه مده یا مدو باشه میگیم مده. درست شو ولی ضرب یزر و ازر فتح یفت و افته نظر ينظر و انظر اگر عین الفعلش کسره باشه یا فتحه باشه همزه مکسور میشه مثل ازر افته اگر زمره باشه همزه مضمون میشه مثل انظر انصر درست شو همزه الیفلام مثل الغمر همزه شمزه وصله میگیم وقمر ازادالاها همزه اسم بسم الله الرحمن الرحیم به اسمه نمیگیم همزه اسم ابن آه؟ ان ابنک خوندیم درست شد؟ امرق سعلم رعون امرع درست شد؟ همزه مررتو برر تو بمرعن امرع درست شد؟ امرع و اسنان و اسنتان میگیم وسنانه وسنتانه درست شد؟ این هم همزه شون همزه وصله که اینا رو دیگه توی سرف شما دیدید و بلد دید. من خواستم فقط یه یادآوری کنم که چیز جانم کیفیت تختیب کیفیت تختیب مطلب در واقع تمرینی ماست این و نورید و نقط البیت ها. اگر ما بخوایم تختیب کنیم یه بیتی رو معرف تااس تختی می کنیمیم بعدیله معرفت وزن نهی و بهرییم برای اینکه وزنش رو بفهمیم مثلا فعولان مفیلان فعولان مفیلان فعولان مفیلان، فعولان مفاعیلان هشت. قوین وزنش رو فهمید. خب وزنش رو خب بفهمیم که چی بشه بهرهش رو بشناسیم. به میگیم می بینیم تو ذهنمون داریم بلدیم که فعولان مفیلان فعولان مفایلان بحر تویه. میگم خب پس این شعر، وزنش فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل بحرشام بحر طویل این اما نورید و ان نقد معرفت بیت هی و بحر هی علینا میگه اگه می‌خواید کارو کنیم لازمه بر ما ان نتبع طریق مقات الصوفیه دنبال کنیم شیوه بخش های صدایی رو آ، اون چیزی که گفتم توی درستان کلاس های اول ابتدایی رو اینا یاد میدن برای اینکه دانش آموز بتونه قشنگ کلمات رو ادا کنه و بفهمه فهمه میگن آب، با،, با، با، داد این کلمات رو بخش بخش میکنن این بخش های صدایی رو دنبال کنیم کما تعلمناها فی خراحت القرآن همونطور که این رو در قرائت قرآن قدیم بق... میخواستم قراعت قرآن یاد بدن بگفتن همین نشسته سا بودن, بودن بس مل لا هر ره، ما نر اینطور بخش بخش بخش بعد میخوندن بسم الله الرحمن الرحیم میگه اینطوری باید ما این شعر رو داشته باشیم ف فا نب ک من زک اینجوری بگیم بعد بخونیم قفا نب ک من ذکرا حبیب من کما تعلمناها فی قرائت القراء مهی عن لفظ الحرف المتحرک بخشا اینطوریه هر حرفی متحرک و بعدش هم متحرک اومده اون خودش میشه یه بخش اون قفا اما هر حرفی که ساکن متحرک بعدش ساکن اومده اون دوتا با هم میشه یه بخش نبا کن قه شد یه بخش فا شد یه بخش د فا نب متحرک ساکن شد یه بخش که خودش شد یه بخش درست شده نه؟ اون اینه مهیه ان نلفز الحرف المتحرک الذي یلیه متحرکون منفرده اونو به توی تنهایی و نکتبه او کتابتا عروزیتان و بنویس میشه کتابت عروزی مستقل من نرمز و نرم ز ببینید حالا می رسیم به مرحله سوم کارمون اینو دقت کنید مرحله اول چی بود؟ یک شعری رو به شکل املاع عادی می نوشتیم قفانب که من ذکر را و منزلی زدی به سختله و بینینت تخول فهاوندی اصلا عین کتابت عادی و معمولی که می نوشید. مرحله دوم می این رو به شکل چی می کتابت عروزی. درست شد؟ به شکل کتابت عروزی می نوشتیم. مرحله سوم، این کتابت عروزی منو علامت گذاری می ببینید هر کجایی که یه حرف متحرک داریم اونو به شکل یو می نویسیم یو الان نگاه تو کتابتون هست مثلا G یو هر کدوم که یه متحرک یک ساکن است به شکل خط تیره الان قفا چجوری نمیشه میشه یه متحرک یه yes. متحرک ساکن متحرکرو به شکل یو نویسیم، اون متحرک ساکنر به شکل خط تیره قفا نب که نپکه رو چطور مینویسیم نبش رو به شکل خط تیره چه به شکل یو الان قفا نپکه چی در به شکل شکل رمزیش یه متحرک داشتیم یو یه متحرک ساکن خط تیره دوباره یه متحرک ساکن خط تیره دوباره یه یو درست شد یا نه؟ این مرحله سومه و نرمز و به علامت یو من نلفز و نلفظ و حرف مترک کهظی یلی حرف و ساکنان معند این دوتا رو با هم تلفظ می کنیمیم و نلفظ و حرف المرکهلظی یلی حرفون ساکنان معند این دوتا رو با هم تلفظ میکنیم و نکتته هم کتاب و یک کتابت عروزی براش می نویسیم غه ف فا. فقی کتاب عروزی؟ و نرمز و ما و به این دو حرف فا اشاره میکنیم بلعلامت خط تیره بعد حالا اگر یک موقع آخرش رو وقف کردیم وقف رو به چه به شکل سکون و یورمز و علال حرف ساکنه المتبقی و اونو به شکل چی مینویسیم بل بلعلامت سکون درست به یه علامت صفر می نمیسیم. فعله هازا پس بنابراین این یمکنه تقطی و سورت الکو سر علا نهج تالی الان ما میتونیم سوره کو رو به این شکلی که میگیم تقطی الان به شعر بود که هم این کار میکنه من این قرآنه ما فقط تختی کردیم که بتونیم بخش بندی کرد. الان اولش خط اول بسم الله الرحمن الرحیم، ناعت اینا الکو سر این نشانه که و بلدتر نیمان کنیم بشه که قرآن آردینه بشه شد شما مرحله دوم بخش بخش بخش بخش به شکل چی نوشته شده؟ عروزی درست شد. مرحله سوم چیه؟ رمز عروزی. این سه مرحله رو ما در شعر پیاده میکنیم هر شعر اینو باید یاد بگیریم این کارو بکنیم. تمرین کنیم. الان بسم الله الرحمن الرحیم. نگا کن بس من لا هر لانا ما نر تا اینجا همه خط تیر است چرا؟ چون یه متعردی ساکنه ساکن رهیم ره خودش یه حرفه متعردی که اینه به شکل یومی هی باز خط تیر است میم ساکنه به شکل ساکن بسم الله الرحمن الرحیم. این نا اعطی نا کل کو فصل لِرَبِّكَ وَنْهَرْ علا به بعضی چیزها رو میفته چون همزش همزه قطعه نمیفته اِنَّا اعتاینا کل کَل مؤلفه الکوسر میفته کَلْ کَوْسَر اِنَّا اعتاینا کَلْ کَوْسَر لام سله جدا میشه ل رب بکه لام سله جدا شد ربکه هم باش جدا میشه ونهر علف ونهر میافتد چون علف وصله شد حالا ببینید چه شد انا اعتینا نا کل کوسن ف ساله ل ونهر الان نگاه کنید بعضی ها خط تیره است تعداد زیادش چون متحرک بعدش ساکن بوده بعضی جاها مثل فه خب یه حرف متحرکه به شکل یو نوشته شده رب لام همینطور درست شد لرب بکر بکر باز این دوتا متحرکه که من هر دوتا تا خط تیراست این شانه عکه هول ابتر این هو ول ابتر درستو؟ میشه توی این رو ما حالا توی قرآن بیاده کردیم شما توی شعر بیاده می‌کنید که بتونیم وزن و بهرش رو تشخیص بدیم حالا نگاه کنید و علاهازا و بنابر این شکل و علاهازا سبیل نقطت و تفعیلات علا اصلیت و علاهازا سبیل نقطت و تفعیلات علا اصلیت تفعیلهای اصلی رو تفتیم میکنیم من نرم و علیه به اونها اشاره میکنیم و یمکنه لکن تغییر ساعت تفیلات الفرعیتن علیه ها تو میتونی تفعیل های فرعی که تو صفحه سفیه قبل امروز اول درس گفتیم برش خیاس کنیم حالا دگاه کنیم من برام مهم میره این وزن ها رو میبینید وزن اصلی ما بقولو ما خودمون تفعیل های اصلیست فعولون فاعلون مصطفعلون فاعلاتون متفائلن، متفاعلون مفاعلون اینا وزده اصلی ماست اون اصلی بعد از اینها تفعیله های فرعی هم ساخته می ببینید اینا رو ما الان تختی کردیم فرع، به شکل کتابت عروزی نبشتیم بعد رمز اینا رو دقت کنید چشمتون به اینها عادت کنه یعنی بدونید که فرعولان یه دونه دو دوتا قطعه تیره آن این چشم و ذهن بهش عادت کنه بدونین دوتا خط تیره از یه یو اما اون یو وسط این تا این چشمتون میخوره به این رمزه و میخوره به این عبارت بتونید بخونید یعنی الان من اون بالا فعولانم نوشته نشده باشه اینو ببینم میخونم فعولان اون بالا فعولان دوتا به شکل عادی و عروزی نوشته نشده باشه اون رمز ببینم میخونم فعولان مثل مقول خودمون این رمزگزاری هایی که شما بتونید تشخیص بدید موسیقی اصلا مرس درست شد؟ که طرف مرس و علایمشو میبینه میخونه اینطوریه چشم عادت کنه فعولون، فائلون، مصطفعلون الان میبینیم الان با فائلاتون نگاه کنید با هم تناسب دارن همینطور نگاه میکنیم الان دو تا یو دو تا خط تیره یه یو یه خط تیره این دفعه یه برعکس اونه باید چشمت خطا نکنه اینه که میبینی مستفعلن ایلان که میبینی فاعلاتن مفاعلتون متفاعلان مفاعلون ببین با مفعولاتون میبینید؟ چشم نباید خطا کنه بتونه؟ بخونه. اینا رو یه زلاله ما البته انقدر بیت تقدیل میکنیم و برای شما میخونیم اینا کامل براتون میاد تو ذهنتون ولی میخوام بگم خودتون یه مقداری تمرین کنید اون فریعی ها رو هم تمرین کنید میتونید اون موقع تشخیص بدید حالا بعدا تعرف نانا کیفیت تختیل کلام بعد از اینکه ما آشنا شدیم بر کیفیت تختیل سخن الان مقاط اصوتیت اونم به بخش های کلامی درست شد و رمز علی ها و یاد گرفتیم چجوری براش رمز گذاری کنیم و بنویسیم یو و خط و تیره و تقطیع تفعیلات الاصلیت و رموزه ها یاد گرفتیم تفیل کنیم تفعیل های اصلی رو که تو این جدون دیدید و رموزش رو در بیاریم بعد از این کارهایی که یاد گرفتیم نستتی و ان نغت تهربیات شعری الان دیگه هر بیت شعر رو به ما بدن باید بتونیم کتابت عروضی کنیم بتونیم رمض گذاری کنیم یعنی قفانب که منزک راهبی و منزلی به سخت لوا ویند دخول فهملی اینو به شکل عادی بنویسی هر بیت شعری رو بهتون بدن باید به شکل عادی بتونید بنویسید بعد به شکل عروضی بخش بخش بتونید بنویسید. بعدم رمزگذاری کنید یعنی خط تیره و یو این مرحله رو دیگه بلدید نستتی و هن ناغت تا حلبی حالا از این به بعد ما این رمزها رو باید بتونیم بخونیم فعولان مفایلان فعولان مفایلان بعدم تشخیص بدیم که این بهر طویل است. درست الان شما بلدید رمزگذاری کنید ولی رمز خانیش که فعول اون و این که این رمز باب بهر طویله اینا مراحل بعدی درس ماست درست شد تا اینجا این مطلب رو من به شکل تمرینی گفتم حالا انشالله تعالی این مبحث رو داشته باشید و چهار شنبه هم که ساعت ده بیان مقدمه ی کار تمام میشه انشاءالله از دوشنبه بعدش وارد بحث بهرها مخواهیم شد پس همه شما انشاءالله به شرط حیات صحت و سلامت از جانب خداوند متعال برای شما و خودمون انشاءالله چهار شنبه ساعت ده در خدمت شما هستیم جبانی اون این مقدمه تمام میشه شما یه ذره تمرین کنید این مقدمه رو که با هم دیگه کار کردیم بر وارد بهرها بشین میبینید که خیلی سرد نیست ولی خباید حفظ کرد باید این درس رو از لحاظه زحمتی که برای شما داره حفظشه و ایلا ما هم البته من سعی میکنم که خیلی تر و تر بگم که بتونید حداقل با اون که به شکل مجازه استفاده کاملی داشته باشید موفق و معییت باشید و در صحت و سلامت کامل و السلام امریکو و رحمتون داره